بسم الله الرحمن الرحیم بنامی خداوند بخشنده مهربان اذا وقعت الواقعة هنگامی که واقعه عظیم برپا شود لا انسان لوقعتها کاذبه هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند حقده و گروهی را پایین می آورد و گروهی را بالا می برد اذا الارض رجا این در هنگامی است که زمین به شدت بلرزه در می آورد و بودت الجبال با در هم کوبیده می شود فکانت هبان بستا و به صورت غبار فراگنده در می آگید. و ثلاثة با شما به سه گروه تقسیم خواهید شد و نخوف اصحاب میمنه هستند چه اصحاب میمنه ای؟ و اصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمه گروه دیگر اصحاب شوم که اصحاب شوم و سابقون سابقون و پیشگیران پیشگام اولئی که المقربون آنها مقربان در باغهای های پر نعمت بهشت جای دارند من گروه کثیری از امت های نخستین هستند من و قلیل و اندکی از امت آخرین آنها بر تختهایی که سب تشیده و به هم پیوسته از قرار دارند در حال که بر آن تکیه کرده و روبروی یک دیگرند نوجبانان جابدان پیوسته گرداگرد آنها می گردن. باقوال و اباریق و کتم من معین با قدها با کوزه ها و جام های از نرح های جاری بهشتی لا یقدعون عنها ولا ينزفون اما شراب کذ آن درد سر نمی گیرند و نه مفع می شوند و و میبه از هر نو که ماجل باشند و گوشت پرنده از هر نو که بخواهند و با همسرانی از حور العین دارند همچون مرداری در صدف بنهان جزاهم بما پاداشی در برابر اعمالی که انجام می دادن لا يسمعون فيها لغوا ولا بهشت نه لغو بیهوده میشنوند نه سخنان گناه آلود سلاما سلاما تنها چیزی که مشنوند سلام سلام و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب یمین چه اصحاب یمینه بی صدر مغفود آنها در سایه درختان صدر بی خواب قرار دارند و طلح بود و در سایه درخت طلح پربرگ به سر می برم و ظل بود و سایه کشیده و گسترده و, مسکوب و در کنار آبشارها و فاتحه کثیره و میوه های سراوانه لا مقویت و ممنوع که هرچیز قطع ممنوع نیشه باد و ضوچ گران و ما آنها را آفرینش نبینی بخشیدیم. فَجَعَلْنَاهُنَّ اَذْكَرَا به همه را بیکس قرار داده این قُرُبًا اطرابا همسرانی که به همسرشان عشق میبردند به خوشدبان و ستیح و همسن و سادند لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ اینها همه برای اصحاب یمینند دلت من الاولین که گروهی از امت‌های نخستینم از و گروهی از امتهای آخرین و اصحاب شمال با اصحاب شمال که اصحاب شمال زموم و آنها در میان بادهای کشیده با آب سوزان قرار دارند و ظل من یحمون بدرچوگه ی دود هاوی متراکم با آتش زا لا وارد ولا کن صوجه ی کنخونک است و نمپی اینهم کان قذ لذلک مسترفن آنها پیش از این در عالم دنیا مست مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار داشتند و می گفتند هنگامی که ما مردین بخوف و استخان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد او آباؤنا الاولون لم يكن نخستين ما قل ان الاولين والاخرين بگو اولین و آخرین لما يمون الى ميعاد يوم همگی در موعد روز معینی جمع می شبان ثم انکم ایوها الضالون المکذبون سپاد شما ای گمراهو نتکذیب کنند من شجر من قطعا از درخت زقوم می خورید و اون من شکمها را از آن پر می کنید و روی آن از آب سوزان می نوشید بشاربون و همچون شترانی که مبتلا به بیماری اتش شده اند از آن می آشامید هذا نورهم یوم از دین این هفت و سیله پذیراوی از آنها در قیامت نحن خلقناکم فلولا تو صدقون برا آفریدیم چرا آفریدش بار دیگر را تسلیق نمی کنید ماتم آیا از نطفۀای که در رحم می ریزید آگاهید <تصفيق> آیا شما آن را آفرینش پی درپی می دهید یا ما آفریدگارین ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کسی بر ما پیشی نمی را تا گروهی را بجای گروه دیگری بیاورین و شما را در جهانی که نمیدانید دانید تا شتا تبخشید نشأت الاولا فنولا تذکرون شما عالم نخستین را دانستید چگونه متذکر نمی شبید اقرأيتم ما تحرطون آیا هیچ درباره یه انتیکشت میکنید اندیشیده ای؟ اانتم تزرعون؟ ام نحن الزارعون آیا شما آن را میرویانید یا ما میرویانید؟ هرگاه بخواهیم آن را تبدیل بکاه در هم کوبیده می کنیم بگونهی که تعجب کنید بگونهی که بگویید راستی ما دیوان بلکه ما کاملا مصلومه آیا به آبی که مینوشید اندیشیده‌ای انتم من ام نحن المندلون آیا شما انراز آب نازل می کنید یا ما نازل می کنید لو نشاغ جعلناه اجاجا فلولا تشکرون هرگار بخواهیم این آب گوارا را سلخ و شوق قرار می دهیم بس چرا شک نمی کنید التي آیا درباری آتش فودی فکر دیدی؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ آلم؟ و ما آن را وسیلی یاد برای همگان با زندگی برای مسافران پر این حال که چونین است بنامه تروردگار بزرگت تسبیح کن. پس سوگان به جایگاه سترگان و محل سلو و غروب به آنها. و اینه قسم لو تعلمون, تعلمون بیگمان این بسیار بزرگ. اگر بدانید. آن که ان قرآن کریم. کهتاب که در کتاب محفوظ جای دارد موقاهاها و جز پاکان نمیتوانند آن را نص کنند این چیزی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده. و هذا آز الحديث انتم مدهلون آیا این سخن را سست و کوچک میشمرید و تجالون رزقكم انکم تکذبون با بجای شکن روزی هایی که به شما داده شده آن را تکریف میکنید فلولا اذا بلغت پس چرا که جان به جا گلوگاه می رسد توانایی بازگردن آن را ندارید و شما در این حال نظاره می کنید و ما به او نزدیکتریم از شما ولی نمی بینید ان كنتم غير مدينين اگر هرگز در برابر اعمالتان جزادادا نمی شبید ترجعونها این کنتم پس او را باز کردانید اگر راست می بس اما اگر او از مقربان باشد بروح و ريحان و جنت نعيم فس در بهشت فر نعمت و كان من و اما اگر از اصحاب یمین باشد فسلام لکه من اصحاب یمین با او گفتن می شود سلام تو. اصحاب دو سانت که اصحاب یمین استند و اما و این کان من المکذبین اصحابی اما اگر او تکذیب کنندگانی گمراه باشد. با من حیم با آب جوشان دودخ از او پذیرایی می شود و تسلیت جهنم نوشته او و بروید در آتش جهنم است؟ این آناله و حق این همان حق و یقین است حال که چونین است نام پروردگار بزرگتا منزه بشمار